اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان لعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین از والسلام و السلام على نبینا و آله الطاهرین خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم روز به خیل عرض میکنیم الله که از نعمت و صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشالله که با اینایت الهی از هر گزند و بلایی هم به دور اما بحث ما در مبحث اثر علم بیان در تعدیه معانی به این نقطه رسید که ما میتونیم یک معنای واحد را با توجه به موضوعاتی که در علم بیان خوندیم با توجه به موضوعاتی که در علم بیان خوندیم میتونیم یک معنا رو به شکل‌های گوناگون بیان کنیم و علم البیان فی تهدیة معانی، یعنی تأثیری که علم بیان داره در رساندن معانی مد نظر ما معانی مثل اصلا کرم مثل شجاعت آه. ما این معانی و مفاهیم رو با توجه به علم بیان میتونیم به صور مختلفی بیان کنیم یکیش رو دیدیم که آقای شاعر وقتی مده جعفر برمکی رو میکرد بدون اینکه استفاده از صور بیانی تشبیه مجاز یا کنایه بکنه به طور سریح و حقیقت اینطور طور گفت که یورید الملوکو مداجه افرند ولا یسن کما یسن و ولیس به اوسعه هم فلقه نا ولیکن نمعروفه گفت همه پادشاهان میخوان به جایگاه جعفر برمکی برسند ولی کاری نمیکنند به اون چنان که جعفر برمکی انجام میده کار او رو تقلید نمیکنند. بعد گفتیم خب ممکنه نداشته باشند مثل جعفر برمکی دست باز نداشته باشند ثروتشون کمتر باشه گفت نه جعفر برمکی از اونها دستش بازتر نیست ثروتمندتر نیست بلکه جودش از اونها بیشتره معروف و عطایه او از اونها وسعت داره خب به شکل سریع گفت حالا میگه وقد یعمه حالا از اینجا به بعد صوره بیانیه اونم نه اینکه که همه صوره ها مثلا از تشبیح دوسه نمونه از مجاز دوسه نمونه کنایه همینطور از صوره مختلفی که خوندیم و ازن استفاده میشه تو این مهور و قد یعمد الشاعر اندلس به بالكرم الى اسلوب ناخره و گاهی یعمد و یعنی یقصد و قصد میکنه شاعر موقعی که میخواد توصیف کنه کسی رو به کرم به اسلوب دیگری به سبک دیگری و یقول این طول میگه کل بهره کل بحره یعنی حقه کل بحره مبتدا کل خبرشه از تشبیه استفاده کرده عدات تشبیه هم هست کاف درست شد وچه شبهش هم نیست درست شد یعنی شمول آم بودن میگه خواه بهر. او مثل دریاست دریایی که یقزف و للغریبه جواه را میدهد یقزف و قذف و, و یعنی طرحیت را هفت میکنه میدهد به کسی که در کنارش نزدیک اوست جوهر گوهر، جواهر را گوهرهای میده اونی که در کنار دریاست میره داخل دریا قواسی میکنه گوهرهایی را از سلفهای دریا بیرون به او گوهر میده جودن مفعول له از سر جود خودش او مثل دریاست دریایی که به کسی که نزدیک اوست گوهرهایی عطا میکنه از سر جود و یب اصول البعیده سحای با جمع صحاب و میفرستد برای کسی هم که دوره عبرهایی رو جودن از سر جودش چطور دریا دور و نزدیک رو فراموش نمیکنه به اونی که نزدیک دور رو گوهر میده به اون که دور است ابر میفرسته و باران عطا میکنه و او رو از تشنگی در میاره اینم هم همینطوره عطا و کرم او دور و نزدیک نمیشناسه شامل همه هست پس میخواد بگه او کریمه دیگه و کرمش هم زیاده همه از تشبیه استفاده کرد. تشبیهی که مرسله آدات تشبیه رو داره و مجمله وچه شبهش هست یق ز فولل غریب جواهه را فائل یک زف و یا تو میخوره به الب این جمله بعد از البهر بعضی قایلا جمله بعد از معرف حاله بر ال بعضیا میگنصففت چه البر مضظور الفلام جیممس در حکمه نکرد است. و یا شب به حال ما نگام کنیم ممدوح رو تشبیه کرده به دریا و یطفه او به خیالک و میندازه توی ذهن شما خیال شما رو میبره الا ان یوزاهیه یعنی یوشب خیال شما رو میبره به اینکه که تشبیه کند ایجاد شباهت کند بین الممدوح و البهر بین اون شخص ممدوح که کرم دارد و دریا که مظهر کرامت کرم إله أن يزاح بين الممدوح والبحر النزي دریایی که یغذف از عد دور عدل می‌دهد در و گوهرها را به کسی که نزدیکش باشه و یرسل السهاء بالبعید و ابرهان هم میفرسته برای شخصی که دور پس همون معنا رو گفت همون یرید الملوخ مضا جعفرن همون که این آدم کریم خیلیام کرم داره اما اینجا آمد از تشبیه استفاده کرد او یقول یا اینطوری میگه یعنی یه سبک دیگه تشبیه استفاده کرد هوب بهرو هو مبتدا البهرو خبر این هوب البحرو تشبیه بلیغه مبالغش بیشتر از اون قبلی هوب البحرو او دریایی است از کرم کوبلبن من عی نواحی او از هر طرف که بیایی به سوی این دریا او مثل دریاست در شمول کرم من نواهی نواحی او از هر طرف که بیای سراغ این دریا و المعروف لجه یعنی قسمت امیق آب دریا قسمت عمیق این دریا عطا و کرمه و جود و ساحله و جود و کرم هم ساحل اوست قسمت عمیق دریا لطفه عطای اوست و جود و کرم هم به منزله ساحل اوست مثل ساحلش قسمت عمیقش عطا و کرمه و جود ساحلش الان این حوول بهر داره همین رو میگه اما از تشبیه بلیغ مبالغش میگه این مثل دریاست شمول داره کرمش از هر طرف بیای اون عمق کرم این رو میبینی و در کنار ساحلش بگید که جود و کرم و اوز آرامش پیدا میکنید چه کنار ساحل شما آرامش پیدا میکنید و قسمت عمیق آب دریا هم عطای اوز عطای او اصلا ساداتا نداره خیلی نیست. خب از چی استفاده کرد خوب الوحر فید دعی انلهو بحرن افسو اینجا خوب الوحر که میگه دیگه عداد تشبیح نداره و چه نیمده مبالغه زیاد شده دیگه انگار که او خود دریاست و, و یون که رو تشبیحن و فرانن یعنی انکارن انکار میکنه تشبیح رو انکار کردنی که یدل علل مبالغته که دلالت میکنه بر مبالغه و ادعاء مماثلت کامل ادعای مبالغه داره و ادعای مماصلت کامل مثل که بگی زیدان عصدان وقتی میگی زیدون عصدان در ظاهر یعنی زید شیره نه مثلشه زید در همه چیز مثل شیره خود شیره در ظاهر اینطوری فهمیده میشه ولی وقتی میکنی میکنیم این زید انسانه اون شیر حیوانه پس این منظور اینه که مثل است عدات تشبیه و ورچه شبه یادتون باشه اول کتاب گفتیم ملحوزند مد نظرند اما در تقدیر نیستند تشبیح بلیق. او یهول یا میاد برای مرتبه بعد اینطور میگه اما از یه که دیگه استفاده میکنه میگه الا الا یعنی شخص الا یعلو یعنی بالا رفت بلند مرتبه گشت الا فمای از تغیر فی یده فیده این فاپای نتیجه است چون بلند مرتبه است چون عظیم و شعنه فمای از تغیر رلمال و پس مال تو دستش باقی نمیمونه <تصفح> <تصفح> چون بلند مرتبه است چون بلند مرتبه است مال تو دستش نمیمونه خب. یعنی یه کسی اگر بلند مرتبه باشه عظیم و شن باشه مثل آتمتایی باشه مال تو دستش نمیمونه ثروت زیاد آدم ازش نمیبینه مال رو هم جمع نکرد بعد میگه و کیف تمسک و ماع قنت جبدی آخه چجوری میتونه تمسک و نگه داره آب رو قنه یعنی قله قله کوه قله کوه اولین جایی است که برف و باران برش مینشینه اما یه کسی آب میخواد ته درله نهرها جویها ته دره است. ته درله شما آب رو میبیند اون بالا کوه همینطور سرازیر میکنه میگه میگه آدم بلند مرتبه مثل کوه میمونه بلند مرتبه است آب رو میفرسته پایین این دره هستش که مثل آدمهایی است که مال جمع میکنند این آزادگان به قول سعدی توحید هستند عین همینو توی کمی همین کتاب خوندیم یادتون باشه میگفتش لا تونکری عتلل کریمه من القنا فسیلو هرغن للمکان العالی توی تشبیه زمینی که تو جزء اول یه چیزی نسبت میده به مشبه که این بلند مرتبه است و توید است تو جزء دوم دلیل و برهان براش میاره که قلعه کوه هم که بلند مرتبه است آب ما اون بالا نمیبینیم آب ته درست، در است پس از تشویش زمینی استفاده کرد همونو گفت فیور سلوی لکت من طریق خفیه تشویح رو برای تو آورده از یک راه تنهان لگر تفع الکلامه مرتبت نعلا تا کلام رو به رتبه خیلی بالایی برسونه فلولا در یادتونه گفتیم که تشبیه زمینی ابتکار توشه تشبیه زمینی زیبایی این توشه که مثل جدول وقتی طرف حل میکنه رغبتا فی اخواه تشبیه کاملاً اون تشبیه رو مخفی کرده اینه ابتکار توشه فیلتفه اه. می‌گفد فایور زل کلام فایور زل اینک از تشبیه همین طریقن خفیه فیلترت اول کلامو اله مرتبه تنعلا تا کلام بالا میره و یلترت علی کلامو تا کلام اوچ بگیره اله مرتبه تنعلا به یک رتبه بلندی که در بلاغت بده و لیت علی الک و برای اینکه برای تو قرار بده من از تشبیه زمینی از تشبیه زمینی دلیلا تشبیه زمینی توش دلیل برهان بود تشبیه زمینی توش ابتکار بود توش رغبت در اخفاق تشبیه بود اینا توزایی بود که خوندیم لبلیت علالکم این من تشبیه زمنی دلیلن علا دعوا یعنی علا ادعا فا ادعا زیرا این شخص ادعا کرده فا ادعا ادعا کرده که این شخص به خاطر اولوب و منزلتش هدر حدلون من منیده مال از دست او سرازیر میشه به خاطر اولوب به مال تو دستش نمیمونه سرازیر میشه تو دست دیگران و اقام اعلا که برهانه و بر این مطلب استدلال کرده و برهان آورد فقاله و کیفت امسه ما ان رو جوالی آخه چجوری آب رو تو خودش نگهداره قله کو تا حالا شما قلعه دیدید چشمه بالاش باشه و آب رو اون بالا نگه داشتش نه سرازیر میکنه پایین درراها هستند که چشم سارند و آب نهرها در اونها است خب اینم باز همونو کن. اما با تشبیه زمین حالا نگاه کنید او یغول یا میاد این میگه میگه جرن نهرو النهر یعنی این نهر این نهرها جاری شدند نهرها روان شدند جرن نهر حتی خلطهو منکه و اوما جوری که من فکر کردم این نهرها این نهر ان اوما منکه نعمتهای توست میگه این نهر به شدت جرایان پیدا کرد نهر هم اینطور میرفت حرکت می کرد. من یه لحظه فکر کردم که این نهر عطاب و کرم های توست که داره اینطور روان میره. فکر کردم که این نهر عطاب و کرم توست که اینطور روان داره میره. ره نعمت از جانب تو تو ساق و بلا زنن و تو اتا بلا منن که حرکت داده میشه بدون منت بدون بخل زن و عطا میشه بدون منت رن میگه وقتی که این نهر آب این نهر خروشان رو دیدم داره همینطور به سرعت میره فکر کردم این نهر الطاف و نعمات و عطایای توست که بدون بخل داره میره و بدون منت داره عطا میشه الان نگاه کنیم خیلطهو اونها مفعول اول ان مفعول دومه اون خواهی خوره به نهر نهر رو تشبیه کرده به عطاب و کرمهای این آقا تشبیهش بلیغه چون مفعول اول و دوم افعال قلوب میشه تشبیه بلیغ اما درسته که وقت شبه و ادات تشبیه نیمده تشبیه بلیغه مثل اون یکی ولی نهر رو تشبیه کرده به نعمات او. در صورتی که اونی که متداوله کدومه نه که نعمات یک نفر رو تشبیه میکنن برم میگن نعمتهای این شخص روان شد مثل رود روان مثل رود خروشان به حرکت داره اما اینجا داره عکس میگه داره رود خروشان رود روان رو تشبیه میکنه به نعمات این شخص توثاقو بلازنن و تو بلا منن یعنی توثاقو به دیر زنن بدون اینکه بخل باشه و تو بلا منن و عطا میشه بدون اینکه منتی در کار باشه این توثاقو زنن و تو بلا منن که عرب شده به همین دو تا جمله صفت عن اون منکه هم صفت عن اومن بوده مقدم شده میشه حال گمان کردم این نهر را نعمت در حالی که از جانب توست نعمت هایی که روان شده بدون بخل و عطا شده بدون منت تشبیه بلیغ مغلوب میگه از زن البخل و پایین و الامتنان به تعداد سنائه منت گذاشتن به شماره کردن کارهای خوب والثناء جمع سنیع است یعنی یه کسی کارای خوبش رو بشموره بهش میگن امتنان داره میکنه داره مننت میگذاره نگاه کنید فیاقله و تشبیه اینجا تشبیه رو مغلوب کرده به جهت ما مبالغه تو تشبیه بلیغ به اوجش میرسید حالا وقتی مغلوبش کنید از اونم بیشتر میشه یه بار میگی زیدون اسدون ها زید شیره این بلیغه یه بار میگه احلا این شیر زیدون مثل زیده خب اینجا دیگه هم بلیغه هم مغلوب و یغلب و تشبیهه زیاده تنفیل مبالغته پس قلب کرده تشبیه خودش رو به جهت اضافه در مبالغه وفتنانا فی اصالی به نجاده و مخواسته هنروری کند در سبچ خوب گویی در سبک گویش زیبا خواستو هنروری کند هنرمندی کند و یشبه ما ان نهر به نعمل ممدود تشبیه کرده آب در نهر را، اون نهر روان رو تشبیه کرده به نعمت‌های های بعد بعد کان المعلوفه بعد از اینکه که اونی که معلوف است و معنوسه چیه انتو شب به هم نعمه به نهر فیاض همه میدونن که نعمت ها و عطا و کرم ها رو تشبیه میکنن به نهر فیاض این اومده عکس هم. هم, هم تشبیه بلیغه و هم مغلوبه، خیلی مبالغه بیشتر شده او یقول یا میبینیم میاد همین تو وصف کرم اینطور میگه میگه که این شخص که داد این شخص کی نه یوت مبتسما موقعی که عطا میکند مال و کرم میکند مال رو مبتسمن با خنده با لبخندی که میزند مالش رو به اون سائل و به اون محتاج میده این آدم وقتی بخشش مال میکنه با لبخندان مثل چی میمونه صوبل قمامته مثل باران صوب یعنی باران درشت باران درشت عبره تحمی که فرو میریزد وحیت اطلقه و حالا که اون قمامه اون عبر داره رد و برق میکنه. از چی استفاده کرد؟ تشبیه تمثیلی این که انهو هینه ما مال این هیت مشبه صوب القمامت تهمی و هیت اعتلقو هیات هم عدات اداه هم کعنه و چه شبه هم هیات است و محذوف توی تشبیه تمثیلی گفتیم همینه دیگه میگه این شخص بوقی که لبخند میزنه دندان های سفید و بغ میزنه بعد هم با زبان میگه که ما در خدمت شما این. ما به شما عطا میکنیم ها خدمتتون کاهیم کرد ما نوکر شما اینطوری میگه و بعدم عطا و کرم میکنه این شخص در این حالتش که با لبخند و با خوشامدگویی عطا و کرم میکنه مثل چی میمونه مثل باران یک ابر ابر بارانزا که میبارد و خود اون ابر هم تعتل قهی درخشش میکنه خب یعنی رد میکنه و برق این طرف خنده و چهره باز کلام زیبا به اون شخصی که اومده درخواست میکنه و بعدم عطا و کرم اون طرف چی؟ اون طرف باران مفید، توعم با برق، برق آسمان و بعدشم رعد و رشه. پس بنابراین تشبیه تشبیه است نگاه کنید با این تحمی یعنی تصیل و و یعنی تعلق و یعنی تلماو و می درخشه برمیزن میگه فیحمد و علت تشبیه مرکب یعنی از تشبیه تمثیلی قسم میکنه تشبیه تمثیلی و یعطی که صورتن رائعتن و به تو میده یک شکل زیبا یه هیئت زیبا تمثل لکه حالت الممدوح که برای تو تجسم میده حالت و هیئت مملوه رو و هو یجود جود و او داره جود میکنه و ابتسامت و سرور تعلو شفته و ابتسام و تبسم خوشحالی بر روی لبشه و با زبان هم دنبالش میشه و با زبان هم داره خوشامدگویی میکنه اینها تمثل و لکه این حالت رو به حالت غمامته به حال ابر درست شد؟ تهمی میبارد و یهیه تعط او و حالان که رعد و بر میکنه. این دو تایهه ای رو به هم تشببیر کرد. تو سللوکه حالتل ممده و هو یجبود و بتسامت و سرور شفتای درست شد و یت کلم به حسن و سخن نیک میگه؟ به حالت ال معمت کرده به حالت القمامه تهمی که می باند وضعیت او و حالان که داره رعد و برق این هی عاطبیه با این تشم ترید تموم شد. چندتا صورت حالال تا استفاده کرد داره شکل تا اینجا تشمیر رو برای ما بیان کرد درست را؟ یک کلبه دو حوول بر سه علا فمای چهار جر نهر پنج که اندهو هیل پنج صورت از تشبیه آورد که همش همین مورد رو میکنه که این آدم کریمه بخشانده است حالا چی میگه او یغول یا میاد اینطوری میگه میگه جادت یدول فتحه جواد یجود و یعنی بخشش کرد کرم کرد فقط یعنی فاطبر ابن قاغان جادت ید فتح دست فاطبر ابن قاغان جود و کرم کرد ول انواع و یعنی شرایط آب و هوایی جرم ول انواع و باخلتن و حالا که اوضاع جوی بخل دارد یعنی آسمان بخیل شده نمیده چیزی ولی دست فتح ابن خواغان داره میباره جادتی ادالفرق وله انواهو و حالان که اددقس یعنی شرایط آب و هوا باخلتو و زاب نائلهو نائل یعنی عطا عطای او روان شده زوب شده عطای او داره همینطور میریزه و قیسو قد جمده قیس یعنی باران مفید و حالان که باران مفید آسمان قد جمده خشک شده باران خشک شده عطای او روان شده دست فتح ابن خاقان داره میباره جود میکنه و حالان که آسمان بخیل شد شاهد سر جادت یدولفر ام؟ جادت یدولفت شما اگر اینجا نگاه کنید میگه داره جود میکنه دست فتح ابن خاقان الان اینجا دست فتح ابن خاقان چجوری شده؟ به شده درست شده نه جود کردن مال دسته یا مال خود فتح ابن خاقانه مال فتح ابن خاقانه یعنی جاده الفتخو فتح ابن خاقان اما وقتی که داره میگه جود میکنه یعنی میباره دست فتح ابن خاقان در صورتی که آسمان بخیل شده و اطخاب و کرم او روان شده داره میباره در صورتی که باران در آسمان خشک شده فیوزاهی بین جود مندوف و المطر داره مشابهت میندازه بین جود ممدوح عطای ممدوح و هطای باران ابر. و یدعی عن کرم ممدوحهی لا و ادعا میکنه که کرم ممدوحش قطع نمیشه ممدوهش میبارد گرچه آسمان بخیر شده ولنبا. ازا این اذا انقطعت الانواع او جمد القطر. اگر آسمان خوشک بشه انقطعت وایسه او جمدل القطر یا باران بگو قطرات باران خشک بشه تو آسمون بمونه ولی دست فتح ابن خاقان جود را نسبت داده به دست فتح ابن خاقان در صورت که جود مال خود فتح ابن و دست فتح ابن خاقان رو میگه ام ید الفرد این جادت یعنی امترت دیگه میبارد دست فتح ابن خاقان در حالی که آسمان بخیر شده نمیبارد تو بس دست فتح ابن خاقان شده چی بگید؟ یک ابر یعنی میتونیم استعاره بگیریم جادت یعنی امترت یدول فتح اگه بگه دست فتح ابن خاقان میبارد خود تشبیش شده بر. اگه بگیم جادت خودش به معنای جوده در واقع اسناد داده جود رو به سبب که دست باشه در صورت که جود ماله خود فتح ابن خاقان خود فتح ابن در واقع اینجا از استعاره استفاده کرده که دست تشبیه شده به عبر چون جادت به معنای هم ترد استعاره مکنیه چی مصرحه شد قریمش جادت یعنی ام ترتی ید الفتح شده یا نه باریده از دست فتح ابن خاقان یعنی دست فتح ابن که مثل ابر یا نه جادت ید الفتح یعنی جاده الفتح به یده جود کرده فتح ابن خاقان به سبب دستش به واسطه دستش حالا یا به علاقه سببیت یا عالیت که با هم خوندیم میشه مجاز مرسل که بیشتر اینجا به نظر میاد که استعاره باشه و دست فتح ابن خاقان رو تشبیه به اثر کرد بعد اومده اون رو مقایسه هم کرده با اثر و یزاهی بین جود الممدوح و متر و یده ی ارنکرم درست شد؟ ها گفته کرم ممدوه ما لاینغته بیوسته میاد گرچه آسمان خشک شده و نمی بارد. او یغول یا بیایم اینجا او یغول قدغلت و للغیم اینجا اصلا همی سوی سب که دیگه استفاده میکن قدغلت و للغیم رکامه ولجف في ابراقه و, و على حفي لا تعرن لجعفر متشبها بندايهه فلست من اندادي از نهی تشبیه استفاده میکنه میگه قد قلتو دقت کنید قد قلتو لل قیم الركام قیم یعنی ابر رکام یعنی متراکم چون عبر اگه متراکم باشه خیلی میباره میگه من به عبر متراکم گفتم و لجه و حالان که لجاجت میکرد فی ابراغی در برق زدن و علح و اصرار میکرد فی ارعاده هی در رد کردن صدا کردن میگه من به عبر متراکم که هی لجاجت و هی اصرار در رعد و برق داشت هی میگه من میبارم من میبارم اینجور رعد و برقم یعنی ادعای باریدن میکرد من به این عبر گفتم چی گفتم گفتم لا تعرضن لجعفرن متشبها عرزن لا با لام به معنای عرضه اندام کردن خود رو در مقابل او قرار دادن بش گفتم لا تعرزن لجعفرن در مقابل جعفر در نیاد هم، در حالی که خودتو میخوای شبیه او کنی نرو جلوی جعفر و خودتو شبیه جعفر کن مباده ارزندام کنی و بخوای خودتو شبیه جعفر برمکی کنی به ندا یدک به واسطه کرم دو دستش اون کرم دو دست داره تو هم بگی من باران دارم بخوای بری خودتو شبیه به جعفر برمکی کنی مبادا یه همچین غلطی بکنی نکن این کارو فلست من عندادهی زیرا تو از همتایان جعفر نیستی اگر بری بخوای عرض اندام کنی در مقابل جعفر برمکی آبرود میره نرییا ببینید الان داره اینو نهی از چی میکنه اینو داره نهی از چی میکنه داره او رو نهی میکند از اینکه برود خودش را شبیه جعفر برمکی کنه ببینید اگه ما جعفر برمکی رو شبیه کنیم به عبر میشه تشبیه اگر عبر بیاریم شبیه بکنیم به جعفر برمکی میشه تشبیه مقلوب مبالغش بیشتر حالا اگر بگیم که ای عبر تو لیاقت نداری که شبیه جعفر برمکی بشی آه؟ این دیگه مبالغش از اونم بیشتر میشه موش کنید ما میگیم زیت شیر است خب این تشبیه بلیغ دیگه اما عادیه زید شیر است از این بخوایم مبالغه بیشتر بکنیم میگیم چی؟ میگیم شیر مثل زیده میشه بلیغ مغلوب. حالا اگر بخوایم مبالغه بیشتر از این بکنیم چی میگیم؟ میگیم شیر مثل زید نیست لیاقت شبیه شدن به زید رو نداره اینو مکاره کرده نه بگه که جعفر برمکی مثل عبر است که بشه عادی نه بگه که عبر مثل جعفر برمکی است که بشه مغلوب. بلکه گفته که عبر نمی‌تواند مثل جعفر برمکی باشد چرا چون او نیست نگاه کنی لا تعرضن نده جعفر این متشبه ها به ندایدهی فلسطم اندادهی فیسر هلاکه فی جلالن به طور آشکار برای تو تصویح میکنه و فی غیر خشیت و بدون اینکه بترسه تصویح میکنه به چی به تفضیل جود صاحبهی علی جود الغیب به اینکه جود صاحب من یعنی جعفر برمکی بالاتر است از جود غیب جود ابراسمان و یک تفی به ازا به این اکتفا هم نمیکنه چون اگه به این اکتفا میکرد میگفتش که ابرو بیارید شبیه به جود ممدوح من بکنید یعنی جود ممدوح من بیشتر اونو بیارید میگه نه از این لیاقت تا شبیه شدن به اون را هم نداره ولا یک تفی بل از صحاب. بلکه میبینی او داره نهی میکنه و آسمان رو فی صورت تهدیدن به شکل تهدیدی ان یها بلا به ممدودی اینکه بیاید تلاش کنه تشبه پیدا کنه به ممدوح اینو نرد میکنه لانه لیسه من امثال و نظایر زیایی از امثال و نظیران ممدوح نیست میتون αρبدیشو نمیکنه خونیم تموم شد بریم ببینیم صورت بعدی چی میگه میگه او یقول یا این طور میگه و اقبل اینو خوندیم با هم باب اسداراست یعنی از تشمیل میاد بیرون میره تو استاره و اقبل یمشی فلبسات میگه اون سفیر روم وارد شد بر سیف و راه میرفت رو خانیچه ها فما در پس نفهمید الالبهره از آه آیا به سوی دریا داره شتابان میره ام الالبدره یرتقی یا به سوی ماه داره سعود میکنه میگه وقتی والد تالار سیفو دوله شد روی قالیچه ها که راه میرفت یه دفعه گم کرد نفهمید آیا به سوی دریا داره شتابان میره یسعا ام یا نب الالبدر به سوی ماه شب چارده یرتقی یسعد و بالا میره حالا کدومش بوده به سوی دریا میرفته یا به سوی ماه میرفته کدوم؟ به سوی سیفو دوله میرفته سیفو دوله که در جود و کرم تشبیه به دریا شده و در بلند مرتبگی تشبیه به ماه شب چند. استعاره استفاده کرد. میگه یسف و حال رسول روم توصیف میکنه حال فرستاده روم رو داخلن علی صیف دولت در حالی که داخل شده بوده بر سعیف و دوله خدمت صیف و رسیده بوده فیان زعود سی وصف الممدوح بکرم الاله استعاره تصریحیته. تا تس گرایش پیدا میکنه در توصیف ممدوح خودش بکرم، در اینکه ممدوحشو توصیف بکرم بکنه، گرایش پیدا میکنه الاله استعاره تصریحیته. ممدوح رو تشبیه به بحر کرده به بعد کرده، دو تا استعاره مصرحه. ممدوح صیغه با رو حذف کرده، بحر و بعد رو به جاش گذاشته. ولی استعارتو کما علمتر استعاره همونطور که تو شناختی مبلیگ تو ندار تناس تشبیه استعاره از تشبیه بالاتر. چرا چون تشبیه توش بیشتر به فراموشی سپرده شده چون یه طرف تشبیه توش ذکر میشه حالا مشبه هم به ذکر بشه مثل اینجا مسرحه مشبه ذکر بشه با یکی از لوازم خاصه مشبه اون به میشه بکنی. کما علمتن مبنیتون الان تناس و تشبیر ول مبالغت و فیها و مبالغه در استاره اعظم و خیلی عظیمتره و اثرها فی نفوس عبلغم و اثرش در جانها خیلی بیشتره بلیه تره. اثر خیلی بیشتری در روح شنونده بیزاره خب رفیم داره. حالا ببینیم دیگه چی میگه میگه او یقول این استاره مسرده بود حالا اینطوری میگه میگه دعوت و نداه دعوت و یعنی صدا کردن نداهو و یعنی کرم او را کرم او را صدا کردند دعوته صدا کردنی فرا خواندم عطا و کرم او را یک بار فعجابنی سر یعنی به محض اینکه من خوندم جواب منو داد و علمنی احسان و یاد داد به من عطا و کرم او کیف عاملو که چگونه من آرزوی عطا و کرم او رو بکنم عطا و کرمش به من یاد داد من چگونه دست دراز کنم چگونه آرزوی عطا و کرم کنم خب ببین دعوت و ندا اینجا وقتی میگه من عطای او رو خواندم و او هم منو اجابت کرد ها منادا شدن و اجابت کردن از خصوصیات کیه از خصوصیات کرمه یا از خصوصیات انسان خصوصیات انسان اینجا کرم او تشبیه شده به انسان انسان حذف شده منادا واقع شدن و اجابت کردن که از خصوصیات اوست بگید انسان برای این ندا ثابت شد پس ندا یعنی عطاءو کرم تشبیه شده به انسان انسان هست شده منادا شدن مدعو شدن و اجابت کردن که از خصوصیات انسانه برای ندا ثابت شده استاره مکنی است علمنی احسانو یاد داد به من احسانش احسان تشوی شده به انسان انسان میتونه هست یاد بده تعلیم بده احسان که نمیتونه ولی اینجا میگه علمنی احسانو لطف و عطای او به من یاد داد یعنی انگال لطف و عطای او انسان نیست که یاد میده این هم مکنی است. و یو ندا ممدوه و احسان او ندای و احسان ممدوه رو تشبیه کرده به انسان استاره مکنی هست سمه یه زفا بعد مشبه به انسان رو حذف کرد و یرمز بشه من لوازمه الخاصه بعد یه چیزی از لوازم خاصش آورده. که ندا کردن و اجابت کردن و تعلیم دادن باشه اینا رو آورده و اسناد داده به مشبه که عبارت از ندا و احسان باشه آورده اسناد داده اینها رو اثبات کرده برای مشبه همین اثبات لازم گفتیم میشه غرینه اصطاره اصطاره مکنیه چون ندا و احسان هم جامدن میشه اصلیه پس این استاره مکنیه یه بگید اصلیه است و هوازه زربون آخر منزروو بر مبالغا، مبالغا. این یه نوع دیگری از انواع مبالغه است. مبالغه اینجا تو استاره مکنیه یه داره میشه. و هوازه زربون آخر منزروو بر مبالگه د. علتی تو ساقله استاره تولیه جله. که استاره برای اون مبالغه میاد. قبلاً خب جا می‌بینیم استاره مکنی. حالا تو این یکی اصلا استاره مکنیه نیست میره رو استاره تمثیلیه. که باشه استاره تمثیلیه. حیعت مشبه هم به می آوردیم میابردیم برای مشبه اثبات میکردیم با غرینه حالیه که گفتیم همه زربلمسل ها استعاره تمثیلی ولی حل استعاره تمثیلیه زربلمسل نیست اینجا میگه او یغون از این زربلمسل استفاده میکرد من قصد البهر استقل از کسی که به طرف دریا میره استقل کوچک میشمارد قلیل میشمارد از سواقی از جمع ساقیه است. جوی ها رو م? کسی که دریا دارد به جوی اهمیت بگید نمیدهد یعنی چی یعنی کسی که این شخصو داره که ممدوحشه یعنی مثلا همین جعفر برمکی دیگه به ملوک دیگه نگاه نمیکنه رو آدم حساب نمیکنه چرا چون خودش به دریا متصله دیگه نهر بچه دردش دستش از قرینه حالی استفاده کرده گفته من قصد البحر ها یعنی همین جعفر برمکی و این شخص کریم اگر اینو قصد کرده و اینو داره دیگه استقلل السوابیا ها. دیگه های کوچک رو هیچ حساب میکنه اونها رو اصلا به حساب نمیاره پس استاره استفاده کرده استاره تمثیلیه و یرسل العبارته که اندها مثلن عبارت را آورده کلام را آورده انگار یه مسله یه و مسل و یوسف را لکر و برای تو این شکل تصویر میده ان من قصد ممدوحهو این که اگر کسی ممدوح او رو قصد کنه مثلا جعفر برمکی را استغنا امن غودونه بی نیاز میشه از تمام کسانی که غیر اون باشن کما ان قاصد دلبه همونطور که اگر کسی قصد دریا کنه و قاصد دریا باشه لا یعبه و لا یعتنی اعتنا نمیکنه جداول به جویهای کوچیک فیعتی که استعاره تن برای تو استعاره تمثیلیه لها روعه و فیها جمال که استعاره خودش یک روعه زیبایی داره و فیها جمال و درش یک زیبایی و جمال خاص خودش است و هیف و قزاله که تحمل برهانم و غیر از اینکه استعاره تمثیلی است و زیبایی خودشو داره فوق ازالک بالای این مطلبی که گفتیم و تحمل و برهانا علی صدق دعوا یه ادعا رو داره اثباتم میکنه میگه ببین اگر کسی بره به طرف دریا دریا داشته باشه دیگه نگاه به جوی آب میکنه نه ده. این آقا مثل دریا میمونه دیگران مثل جوی آب میمونه این وقتی دریا در اختیارشه دیگه جوی آب نه. چون که صد آمد نود هم پیش ماست اصلا نگاه نمی کنه وحیف و, و که تحمل و برهانن استدلالن علا صدق دعوا و تو و الهال اللتی یدعی ید تحمل و و تو و الهال اللتی ها این بالاتر از این این استاره همراه خودش یک برهان داره بر صدق ادعای این شخص و تأیید میکنه اون حال و هیئتی رو که این شخص مدعیه کست خب این هم استاره تمثیلی حالا بیاید نگاه کنید یه شکل دیگه او یقول یا اینطوری میگه ما زلت او ما تولی یادن به یدن حتی زنن تو حیاتی من ایادی که من ایادی که که ایادی که بوده اشکال شده حیات که میگیم مازلتا ما یعنی پیوسته، توت به او پشت سر هم می آوردی، ما طولی طولی یعنی توتی آن چرا که عطا می کردی پیوسته اون رو پشت سر هم می آوردی. میگه پیوسته تو عطای خودت رو پشت سر هم قرار میدادی یعنی یکی سه میکردی دینار پشتش یک درهم دوباره یک کیسه دینار یک کیسه درهم همینطور پشت سر هم عطا میکردی مازل تا توت به اون ماتولی تو پیوسته عطا میکردی آنچرا که به من میدادی هی پشت سر هم قرار میدادی ماتوتی یادن به یدن یادن به یدن حال است یعنی نقدن یعنی دست به دست یعنی تو می آوردی کیسه رو می من میگرفتم دوباره تو می من حرف نبود که تو بگی من عطا می کنم نسیه قول بدی آه. تو پیوسته عطا و کرم های خودت رو می به شکل نقد نه نسیه پیوسته همینطور عطا و کرم میکردی نقدن حتی تو جایی که انقدر تو به من عطا و کرم کردی هی hey, تو دادی من گرفتم تو دادی من گرفتم دست به دست حتی زنم تو تو جایی که من گمان کردم حیاتی نکنه اینکه که من زندم من الان آدمم گمان کردم این زنده بودن منم من عیادیک از نعمات تو این تویی که منو زنده کرد حتی زنده بودن خودم رو هم گمان کردم یعنی اینقدر تو به من عطا و کرم دادی هرچی نگاه کردم دیدم هرچی هست من از تو دارم گفتم آیا من زنده بودن؟ خودم هم از عطا و کرم های توست اینم خیال برداشتم که مبادا اینکه من الان آدمم هم زندم هم این زنده بودن من هم جز طف و نعممات این من عیادیک یعنی من نعمک یاد گفته و اراده نعمت کرده حالا به علاقه بگید سببیت یا آلیت چون ید سبب است برای نعمت یا آلت است برای نعمت که گفتیم که میشته تو کتاب ما سببیت کرده فیهد را ان تشبیه او دور کرده از تشبیه و استاره الهل مجازه مرسد زفته به سوی مجاز مرسد و یطلق کلمه ید استعمال کرده کلمه ید رو و یرید بها نعمت و اراده کرده نعمت رو لأن الید آلت و نعمه زیرا ید آلت بران هم علاقه آلیت آلیت یا سبب لأن الید آلت النعم یا سبب او علاقه سبب قمینم یک مجاز مرسل حالا یا نگاه کن او یقول یا اینطور طور میگه اعاد یومک ایامی لنظرتها ل یعنی الا نظرتها وقتس جودک من فقری و احساری میگه اعاد یومک روز تو یعنی دوره تو دوران تو دوران حکومت تو اوه اعاد یومکه ایامی دوران من رو نه نظرتها به شادابیش یعنی این دوران خلافت و دوران پادشاهی تو دوران من رو زمان من رو به شادابی خودش برگردن یعنی روزگار من ایام من روزگار من شاداب نبود روزگار تو روزگار مرا به شادابی وادار کرد برگرداند روزگار تو روزگار مرا به وقت وقتسه و قصاس کرد جود و کرد کرم تو من فقری و اعثاری فقر یعنی بیچارگی اعثار یعنی نداری معصر یعنی کسی که تنگ دسته این یعنی فقر و تنگ دستی منو کشته بود جود تا آمد قصاص من رو از او گرفت یعنی فقر و احسار رو از بین برد. فقر و احسار من رو بگید کشته بود جود تا آمد قصاص کرد انتقام من رو از اینها گرفت یعنی فقر و احسار رو از بین برد. الان دیگاه کن اعاده یومو که روزگار اون شخص روزگار این رو به شادابی برگردونده یا خود اون شخص این شخص رو به شادابی رسونده خود اون شخص اسناد داده اعاده رو به یوم در صورتی که اعاده مال خود کافه ماله خود کافم مال یعنی تو مرا به شادابیم برگرداندی تو مرا از مردگی در درآوردی اینه منظورش ولی گفته روزگار تو نسبت داده به یوم دوباره وقت هست جودوک. اینجا جود تشبیه شده به چی؟ جود تشبیه شده به انسان که میتونه قصاص کنه قصاص کردن که از خصوصیات انسانه برای جود ثابت شده این اصار مکنی است ولی اون تیکه اعاده و کم اجازه عقلیه اسناد داده به زمان مثل اینکه میگفتیم که آشورا اسلام را زنده نگه داشت اینجا هم بگید یوم یعنی روزگار تو روزگار مرا به شادابی رسد فیوسن دول فیلال یوم درست شد؟ و الال جود خب و به جود طریق المجاز حالا این وقت است جودو که میتونیم بگیم جود تشبیه شده به انسان انسان هست شده قصاص که از خصوصیات انسانه برای جود ثابت شده میشه استاره مکنیه میتونیم هم بگیم چه قصاص کرده جود اون شخص قصاص کرده؟ یا خودش؟ خودش قصاص کرده تو قصاص کردی تو قصاص من رو گرفتی تو انتقام من رو گرفتی از فقر و بیچارگی تو انتقام من اما گفته تو اینجا اقتصده اسناد داده شده به جود باید اصنات داده شده به خود کار جود سببه جود سببه برای اینکه اون بتونه انتقام بگیره اعاده اسناد داده شده به یوم در صورتی و اسناد داده شده به خود کاف بگه تو بازگرداندی تو قصاص کردی باید اینطور بگه ولی به جای اینکه بگه تو بازگرداندی گفته روزگار تو بازگردان به زمان اسناد دی. به جایی که بگه تو قصاص کردی گفته جود تو قصاص کرد سبب این بهتره که هر دو را مجاز عقلی بدانیم یکیش به علاقه زمان و دیگری به علاقه سبب فیسن در فعن الیوم و الجود الاطریق تل مجاز الخت یا میایم این طور میگه او یغون فما جازه وجودن در تو کنایه ها. فما جازه وجودن و حل دونه بلکه یسول الجود و, و یسیر کنایه بود کنایه صفات موصوف نسبت این نسبت میگه جود از او جلو نمیفته جود نمیتونه از او جلو بیفته و لا حل و از او عقبم نمیفته جود نه از او جلو میره نه از او عقب میفته پس چی میگیم جود نه از او جلو میفته نه از او عقب ولی یسیر الجود یسیرو فعل مزارع یعنی همیشه جود حرکت میکنه هیشو یسیر هر کجا که این بره جود در کنار اوست جود نه از او جلو میافته جود و کرم نه از او جلو میفته نه از او عقب میفته جود همیشه در کنار او حرکت میکنه آ یعنی این شخص جواده به جای اینکه نسبت بدیم جود و کرم رو به خودش بگیم این شخص جود و کرم دارد گفتیم چی گفتیم جود در رکاب اوست همیشه در کنار او حرکت میکنه کنای نسبت این رو بفته درست شد فیعتی به کنایت نن نسبت الکرم پس آورده کنایه از نسبت کرم الگ به سوی شخص به دعای به این ادعا که انل الجوده یسیر و معهو دائما جود در کنار او دائما حرکت بکن لعنه هو بدلان یحکم به انله کریمان زیرا این شخص به جایین که حکم کند که این شخص کریمه به جای که بگه این آقا کریم است ادعا ان الکرمه یسیر و مه و اینما ساره ادعا کرده که کرم حرکت میکنه با او هر کجا که این بره و لحاظ هلکنای من البلاغت و تاثیر فلن نفس و حسن تصویر المرا فوق مایجد حسام و فی غیرها من بعض زروب کلام و برای این کنایه از بلاغت و تأثیری که میگذارد در روح شنونده و زیبایی تصویر و صورتگری معنا که داره یعنی الان نبوام کنه احساس میکنه جود و کرم یه چیزیه مثل یه شخصی است که در کنار این داره حرکت میکنه این رو ول نمیده همیشه در کنارش و تصویر گفتیم که تصویرگری میکنه دیگه و حسن تصویر معنا فوقمایه جله حسام این بیشتر از اون چیزیه که شنونده پیدا میکنه اونو در غیر اقسام کنایه در دیره ها یعنی کنایه غیر کنایه از استهارو و مجاز مرسل و مجاز عقلی و تشمیل تو کنایه چیزی است که تو اونا نیست به بعض زروب کلام بعضی یعنی جایه بقیه از بقیه انواع کلام این اصلا یه امتیاز زیجه خودش داره. چیزی تو این هست که تو اونا نیست ولی حاضر کنایه منر بلاغت و تأثیر فرنس برای این کنایه از جهت بلاغت و تأثیری که در روح شنونده میذاره و زیبایی تصویرگری معنا شکلدهی به معنا بیش از اون چیزی که شنونده پیدا میکنه در غیر کنایه از بقیهٔ انواع سخن حالا نگاه کنید میگه فأنت ترا میگه تو میبینی انه من المستطاع که قدرت داده شده بود در استطاعت بود الم از تعبیر و ان وصف انسان برکرم استطاعت بود از اینکه ما تعبیر کنیم از توصیف یک انسان بکرب از اینکه بخوایم بگیم فلانی کریم است این استطاعت وجود داشت و می که این استطاعت وجود داشت ان لهو من المطح از تعبیر و ان, ان وصف انسان برکرم به رببع عشر عسوبا استطاعت بود اندهو من المستطاع میبینی که از استطاعت ماست اندهو من المستطاع شعن نزد است در ید قدرت ماست تعبیر کردن از توصیف انسان بکرم کلام متعلق به وصفه تعبیر کنیم از وصف انسان بکرم به عربه متعلق متعلق تعبیره به چهارده شکل انلهو اون زمیر زمیر شأنه من المستطا یعنی من استطاعتنا از استطاعت ماست تعبیر کردن از وصف انسان به کرم. انسانی رو به کرم توصیف کنیم به چهارده شکل کل له جماله و حسنه و براعته به چهارده شکل تونستیم بگیم بیشترم میشد بگیم بعضی ارسام رو نگفتیم بیشتر هم میشد بگیم اما هر کدوم از این چهارده تا رو نگاه کنی زیبایی خودشو داره جمال خودشو داره قشنگی و خودش خودشو داره ولو نشاول عتاینا به عسالی و کثیرت الاخرا فی حاضر من تازه اگه می‌خواستیم می آوردیم اصلوب های زیاد دیگری در همین معنا یعنی میتونستیم 14 تا نگیم 20 تا بگیم 25 تا بگیم چون بعضی از اقسام تشبیر رو نگفتیم بعضی از اقسام استعاره رو نگفتیم بعضی از اقسام کنایه رو نگفتیم فقط یک کنایه نسبت گفتیم فَإِنَّ لشوع... فا و وَرِجَالِ عَدَبِ افتنانن و تولیدن لِلَعَسَانِی لَا لا یکاد و ینتهیه لا زیرا شعرا و رجال ادب و عدب هنروری افتنان و تولید و نوآوری دارن برای اسلوب ها و معانی اونها در اسلوب ها و معانی و مفاهیم، ای شعراب و ادبا تولیداتی دارن که لا یکاد و ینتهی الاهدن. اصلا نمیشه بگیم حدی داره لا یکاد و ینتهی نزدیک است که اصلا بینهایت باشه حد و حسابی نداشه انقدر اینها هر چقدر میگیم این دیگه اند مطلب رو بفتده. بما می رویه کسی بهتر از اون حسن حد نداری ولو عردنا اورد ما یقال من اصالی بر مختلفت المناهی که صفات نخرا تازه اگر ما میخواستیم خواستیم می آوردیم برات آنچه گفته شده از, از اصلوب های مختلف المختلفت المناهی اصلوب هایی که نواهی مختلفی دارد در نواهی گوناگون اصلوب هایی که المختلفت المناهی صبرهایی که انواع و انسام مختلفی دارد در صفات دیگه حالا این تو کرم گفتیم که شجاعت در شجاعت بود عبا زیر بار زور نرفتند و حزم دوراندیشی کردند و خیر شما تو هر صفتی برید می‌بینید اوه 60 شکل گفتن یه مطلب میخواسته بگی این آقا شجاعه منجاه شکل گفته از اوهای تقصیر مجاز و استعاره و مجاز و مرسل و عقلی و تشبیح و کنایه و ولیکن نا ولیکن لم نقص دل اطاله ولی ما نمیخوایم زیاده روی کنیم نمیخواییم طولانی صحبت کنیم و نعتقد و هم در قراعته که از شعر الاربیه و معتقدین وقتی تو شعر عربی رو میخوانی ولی آثار الادبیه تر و اثرهای ادبی رو مطالعه میکنی ستجدو رو به نفسکه خودت همین مطلب رو به طور واضح پیدا میکنی میبینی ا یه مطلب مثل کرم رو به چند شکل ویان کرد و ست تدحش رو للمد البعید فهیرت میکنی به خاطر اون نقطه دوردستی که وصل الیه العقل انسانی به اون دسترسی پیدا کرده عقل بشر تصویر بلاغی در صورتگری بلاغت بل ابداع فی سوق الاسالید و هنروری و نوآوری در ساخت اسلوبها اسلوب ها بشر در بلاغت و نوآوری در ساخت اسلوب ها به کجا رسیده این عقل انسان چقدر رشد کرده چی داره میگه اینو خودت پیدا حالا نگاه کنید میگه حاضه تصایبل مختلفطور التي یا به معنا الواحد یا موضوع بحث علم بیان. این اصو هایی که ما گفتیم تشبیه، مجاز کنایه، اینها چیزهایی هستند که معنای واحد مثل کرم یا معنای واحد مثل کرم باهاش ادا میشه درست شد و این محل بحث ما بود تو علم بیان علم بیان که خوندیم همین بود خاضه الاسالی مختلفت و مختلفتو علتی دابه ها المعن الواحدو موضوع بحث علم بیان اینا محل بحث علم بیانه همین اصلوب مختلف تشمیه مجاز کنایه ولا از این اما یه چیزی رو یاد بگیرید ببینید گول نخورید یه چیزی رو باید بفهمید این نیست که شما اگر تشمیه و اقسامش رو دونستی. مجاز و اقسامشو دونستی کنایه و اقسامشو دونستی تو میشی بلیق تو میشی فلان نه نیاز به چیزای دیگهم داری آه تو الان تشمیر رو میشناسی ولی خب باید تو اینقدر مطالعات داشته باشی که بتونی ذوق پیدا کنی تو باید صرفم بخونی نهوم بخونی آه تو باید لغت هم بلد باشی تو باید مفهوم و رمان و اینجور چیزا شعر و ادبیات و اینا هم بخونی تا یه ملاتی داشته باشی که اونو بریزی تو قالب استعار مجاز کنایه بلا اینا یه قالب های خالی هم. ملات میخواد توش بریزی اونو باید داشته باشی نگاه کنید بلا از اون تفهم و گمان نمیکنیم که شما بفهمید اینطور بفهمید بلا از اون تفهم و ان القدره على صوغهاذه الاساليب البديعه موقوفه على علم البیان. ما فکر نمیکنیم شما اینطور فهمیده باشی که توان بر ساختن این اسلوبهای زیبا فقط با علم بیانه یعنی کسی الان این 140 صفحه کتابی که ما خوندیم رو بخونه علم بیان رو حفظ بشه پس دیگه بلاغت بلده ما فکر نمیکنم تو همچه چیزی گمان کنی چرا لعنل فی تبیر زیرا هنروری در عبارت پردازی لایت وقف الان درس قبای دن متوقف متوقفه به درس بلاقت نیست فقط این شما این این که تا بلاقت و شده فرد زمان نه همچی چیزی نیست و این نمایوس به هلمر و کاتبا بلکه یک آدم کاتبه خوبی میشه مجید درجه یک میشه یا شاعرن مبدعا یا یک شاعر نوآوری میشه یا خطیبا مؤثرا یا یک سخنران گذاری میشه به کثرت القراعه فی کتب العدب به اینکه خیلی کتابهای ادبی بخونه شعر بخواند گلستان بوستان حافظ متنبی نهجر نهج البلاغه کتابهای متعدد بخواند به کثرت القراعه فی کتب الادب و حفظ آثار العرب و خیلی از اون آثار عربی رو که میخواند حفظ کنه و به نقد شعر و تفاقومهی شعرهایی که میخونه آثاری که میخونه را نقد کنه و تفاقوم و سعی کنه خوب بفهمه و دراست نصر فنی نصرهای فنی هنری مثل مثلا نصر گلستان مثل مقامات حریری این نسرهای هنری مثل نسر نحر بلاغه اینها رو بخواند تحقیق کنه دراست نسر الفنی و تذوق اصراره اسرار و رموز اینها رو بچشه اینها رو انجام بده بعد بلاغتم هم بلد باشه اون موقع استاد میشه اون موقع میفهد به هزار اگر این کارو بکنه با این چیزا ترس و خفیه ملکتون در روح او یک ملکه یادتونه ملکه رو اول کتاب گفتن که گفتیم ما یاد میگیریم بعد مهارت پیدا میکنیم بعد از مهارت میشه ملکه دیگه اون زایل نمیشه استعداد میشه میگه به ازا تر سخفیه ملکتون یه ملکی توش پیدا میشه تطف و هو دف ان ال شده اون موقع اون رو میبره به توی به طرف اینکه خوب بگه و عالی بگه اون موقع دیگه میجوش ازش بیرون میاد ولا بود ان يعاذ ده ملکه البته ببین شما ممکنه که قواید ولد باشید بعد شعر های زیادی هم بخونید ملکه هم پیدا کنیم. ملکه هم پیدا کنیم. اما بازم یه چیز نیازه اون غیر از اینها همه ذوق هم باشه ذوق دیگه دریچه رحمت خداست اون ذوق ادبی هم باید باشه میگه ولابود بود ان ده کمک بکنه یساعد ها زهر ملکت تب سلیم یه طبع سلیم یه زوق درست زوق سالم و فطرتون حساسه یه روح حساس باید داشته باشه تکون و معینتن لها ملکه که کمک بکنه این ملکه رو و زهیرتن لها با پشتیبانش بشه اون با حسن. پس تو باید قواعد و گرامرهای بلاغت رو بدونی. بعد بیش از حد مطالعه متعالیه کنی بعد ممارست نسبت به اینها هم داشته باشی حفظ آثار هم بکنی تا برات ملکه پیدا بشه ملکی که پیدا شد استعداد هم داشته باشی اون موقع است که میبینی شدی یک نفری در رده متنبی یا یه ذره بالا یه ذره پایین میبینی اون موقع ولی به سادگی نیست که کسی کتاب بلاغت بخونه بشه ولیکن نه ولی ما بعد از کل هازا بعد از همینا لان استتیو یه نفر میگه حالا شما که گفتید بابا بلاغت اگر یه تنها بخونی کفایت نمکنه باید بریم این حوا رو بریم دنبالش نمیشه میگه نه آه. اگر ما نمیتونیم آب دریارو بکشیم ولی خب به قدر رفع تشنگی باید بچشیم پس بنابراین این اینو نمیتونیم کنار بذاریم اما ما میگیم این مقدار کافی خودو گول نزم فکر با این یاد گرفتن بلاغت تو میش امقالغ نه اون باید کار کنیم. بیشتر کار ولی خب اینا هم بلد ننشین دیگه چی نیستی. میگه ولاکه نه ولی ما بعد از کل آضا بعد از این حرفایی که زنیم لاان هست تو نجده یعنی نان کرد. ما نمیتونیم انکار کنیم فت علم فایده علم بیان رو. ولی علمام به قوانین هی. و توجه به قوانین علم بیان رو انکار کنیم پسا اولا. فع به ما یوفست سلومن الفروغ زیا این علم بیان با فرقهایی که برای ما توضیح میده بین الاسالی بین سبکهای مختلف سبک تشبیح سبک مجاز سبک کنایه با فرقهایی که تفصیل میده بیان میکنه بین اصولوها این فرقه نهو این علم بیان روش شو این میزان صحیح یک ترازوی دقیقه صحیح لتعرف انواع ها. برای شناخت انواع بلاغت بهترین میزانه بهترین ترازوه که بتونیم انواع تشبیه و تشخیص بدیم انواع اصدار و دراستون میزانان صحیح و دراستون عدبیتون و یک تحقیق عدبیست للفحص انکل اسلوبه برای بحث و تحقیق از هر سبک این بهترین تحقیقه درست شد و تبین سر للبلا و تفیق للفحص انکل برای جستجو از هر اسلوب که در مورد هست اسلوبی مثل اسلوب تشبیف بلا خد اسلوب استعاره اسلوب مجاز برای هر کدوم از اینها یک تحقیق ادبی کامله برای یافتن هر کدوم از اینها یک دراستتون این دراستتون به جای اون میزانانه این علم بیان با شرحی که به ما میده یک ترازوی دقیق از برای شناختن انواع اصالی و یک تحقیق است، برای بررسی هر اسلوب و تشخیص راز بلاغت در آن اسلوب این این کارو میکنه اگه این بلد نباشیم دیگه هیچی بلد نیست کل مبحثی که باید میخوندیم به همدلله تموم شد به بهترین شکلش الله که خداوند شما رو در پناه خودش حفظ کنه موفق و معید باشید و از هر گونه استرس و نگرانیم هم دور باش. فقط یه خواهشی ازتون دارم. اگر در بین شما کسی هست که اون از روز اول درس اول تا این روز آخری که داشتیم، همه این مباحث رو پیش خودش ضبط کرده و داره به نوعی با من تماس بگیره که ما این مباحث رو که انجام دادیم از دست ندیم. موفق و مؤید باشید ان الله. خداوند همتون رو حفظ کنه خدا نگهدار و سلام علیکم و رحمت الله و